اوزو بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على علی نبینا و آله خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض میکنم انشاالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاالله به لطف خدا از هر گونه گزند و بلایی هم به باشید ما در خدمت شما بودیم با تقسیم اصداره به اصلیه و طبعیه و قسمت اصلیه رو که امده قسم اصداره هم هست با هم خوندیم که مصلحه و تصریحیه اصلیه و مکنیه یا بلکنایه اصلیه بود و خود خدمت شما گفتیم که هرگاه لفظ مستعار لفظ مستعار در عبارت اسم جامد باشه چه در استعاره مصرحه و چه در استعاره مکنیه وقتی لفظ مستعار اسم جامد هست استعاره رو استعاره اصلیه میگن حال وارد استاره تبعیه میشیم که روز هم خدمت شما گفتم دو قسم استاره مسرحه تسریحیه تبعیه و استاره مکنیه یا بلکنایه تبعیه و گفتیم مصرحه تبعیه رو در متن کتاب گفته که مثال چهارم و پنجم رو براش داریم و استعاره مکنیه یا بلکنایه تباییه که در حد پنج درصد هست ارز کردیم خیلی کمه این رو در حاشیه پایین قواعد آورده و بحث استعاره از این تقسیم هم تمام میشه خب یادداشت میکنیم هرگاه هرگاه لفظ مستعار فعل یا شبه فعل داخل پرانتز یعنی شبه فعل یعنی مشتق مثل اسم فائل اسم مفعول سیغه مبالغه اسم زمان مکان اینها مشتق هستند و شپفل فعل افعل التفصیل پس فهمیدیم منظور از شبه فعل چیست؟ یعنی مشتق اسم فائل اسم مفعول سیغه مبالغه اسم زمان مکان هرگاه لفظ مستعار شبه فعل یا مشتق مثل اینها و یا حرف حرف در کتاب نیامده در این کتاب یعنی سطحش یه مقدار بالاتر از این کتاب بوده این قسم رو از استاره تبعی ذکر نکرده کتاب ما ولی هست در کتاب جواهر وجود داره حالا برای خاطر اینکه کار شما تکمیل باشه من بعد از اینکه استعاره طبعیه در فعل و شفه فعل مشتق تمام شد، اون را هم در یک مثالی به شما خواهم گفت. در یک مثالی به شما خواهم گفت که یاد بگیرید که اگر یک زمانی در کنکور یا در امثال این نوع عبارات پیدا شد شما به طور کامل بلد باشید پس هرگاه لفظ مستعار فعل یا مشتق یا حرف باشد استعاره را استعاره را طبعیه مینامند و این نوع از استعاره و این نوع از استعاره دارای دو مرحله می باشد. دارای دو مرحله می باشد. یک مرحله در نزد متکلم و در ذهن او که در که در اسم جامد جاری می شود و اصلی است و مرحله دوم و مرحله دوم که در فیل یا مشتق جاری می شود که در خارج، و عبارت می باشد پس الان فهمیدیم چرا به این گفتن طبعیه چرا بهش گفتن طبعیه چون دو مرحله داره یه بیش پیش متکلم و در ذهن اونه که مرحله جریان استاره در اسم جامده اون وقتی تو ذهن متکلم درست شد دید میشه میاد از اون اسم جامد فعل یا مشتق که اون اسم جامد میشه مستر دیگه در واقع میاد از اون فعل یا مشتقی رو بیرون میاره استعاره رو در اون جاری میکنه به این دلیل بهش گفتن استعاره طبعیه به این دلیل بهش گفتن استاره طبعی. پس استاره طبعی دو مرحله داره یه مرحلهش یک تو ذهن ذهن متکلم در اسم جامده یعنی در مستره مرحله دومش در خارجه در عبارته در فعل یا مشتق در فعل یا مشتقه به این دلیل بهش گفتن طبعیه چرا؟ چون تابع یک اصداره در اسم جامل و مستریه که تو ذهن متکلمه تو ذهن متکلم. خب دیگه تا این مرحله رو دانستیم دیگه بقیه مثال میزنیم و شما از مثال موارد رو متوجه میشید دو تا سه تا مثال که بزنید دیگه شما میتونید عبارت رو بفهمید فقط اونچه که گفته میشه رو یادداشت میکنید و به ذهنتون می میسپرید نگاه کنید توی قواعد درس قاعده 15 تکون الاستعاره تو تبعیتا استعاره تبعیه خواهد شد از کان لفظو یعنی لفظ مستعار زمانی که لفظ مستعار اللذی جرت فیهه که لفظ مستعاری که درش اسکار جاری شده جرت فیهه مشتقا او فعلا که بهتر اول فعلا بگه بعد مشتقا چون فعلش بیشتر از مشتقشه بعد تو عالم خارجم فعل جلوتر از مشتقه چون مشتق از فعل مشتق میشه اذا لفظ و لذی جرد فیهه فعلا او مشتقا او حرفن حرفنشو دیگه بگید نگفته درست شو؟ فعل باشه مشتق باشه یا حرف باشه زمانی که لفظ که استعاره درش جاری شده مشتق باشه یا فعل باشه یا حرف باشه که گفتیم منظور اینه که فعل باشه مشتق باشه حرف باشه و گفتیم هم چرا بهش میگن استعاره طبیعی گفتیم به دلیل اینکه جریانش در لفظ یعنی لفظ مستعار دو مرحله داره یه مرحلهش اینیه که ما داریم میبینیم میشنویم تو عبارت هست یه مرحله قبل از این تو ذهن متکلم درست شده وقتی اون درست شده از روی این اینی که ما داریم میبینیم و میشنویم رو ساخته درست شد اونی که تو ذهن متکلم هست اصاره در اسم جامده در مستره اون مرحله اصلیه است از روی اون اصلیه این مشتق و و حرف ساخته شده که باید همین دلیل بهش میگن تبعیه خب تصورتون الان درست شد روی این مرحب. دو تا سه تا مثال که بزنیم شما خواهید فهمید اولی رو نگاه کنید قال تعالی و لما سکت ان موسا القذب لما و لما سکت ان موسا القذب اخذل الواه و فی ها و رحمتون للذین هم لربهم بهم موسی موسا به کوه تور رفت تا دستورالعملهای العملهای اراهی رو برا بنی اسرائیل بیاره برادر خودش رو هم هارون رو گذاشت گفتش که به امورات اینها برس تا من برگرد موسا که به کوه طور رفت سامریگی پیدا شد گوساله را ساخت و این مردم را گوساله پرست کرد چون یه مقدار حدود چهل روز آمدن موسی طول کشید و ابتدا قرار بود سی روز بیاد و وعده موسی موسا سلاسی بعد اتممناها به عشر چهل روز که شد اونها گول سامری رو خوردند و گوساله پرست شدند موسی که برگشتید اینها گوساله پرس شدند ناراحت شد غضب کرد حتی نسبت به برادر خودش هارون هم تورشرویی کرد که چرا اینها اینطور شدند هارون هم گفتش که کاری از دست من بر نمی اینها گول سامری رو خورد بعد از اینکه غضب موسا فرو نشست این خشمش فرو نشست لما سکتن موسی الغضب بعد از این داستان و اینکه غضب موسی فرو نشست اخذ الالواح اون نسخه ها الالواح یعنی اون, اون نسخه های تورات رو که آورده بود از کوه تور اونها رو گرفت در حالی که این واوا به و در حالی که این نسخه ها و رحمت در حالی که در نسخه های اون هدایت بود و رحمت بود للذین هم لربهم یرهبون نسبت به اونهایی که نسبت به پروردگار خودشان خوف دارند یعنی نسبت به خدا پرستان در این نسخه ها هدایت و رحمت بود برای خداپرستان هدایت و رحمت بود در این نصفه های تورات خب آیه رو فهمیدیم به طور اجمالی آیه مشخص شد اما این قسمت اول آیه میگه لما سکت عن موسی و وقتی که قذب موسی ساکت شد ساکت شد اینجا چیز نداره چون ببین ساکت شدن سکت و سکوتن این فعل برای چیه؟ برای اینکه من الان دارم حرف میزنم آه ساکت شده این درسته میگه سکت الان استازو ساکت شد یعنی حرف میزد دیگه چیزی نگفت غذب یعنی خشم کردن الغضب یعنی خشم موسی یه خشم کردن که ساکت نمیشه برای اون ساکت شدن به کار نمیره ساکت شدن مال جاییه که یکی حرف میزنه ساکت میشه چه چجوره غضب پایان پیدا میکنه انتها پیدا میکنه میگه غضبش فرو نشست پایان یافت درست شد یعنی برای فعل غضب انتها ینتهی به کار میره انتها به کار میره و اگه این به کار بره حقیقته یعنی اگر فرموده بود و لما انتها و لما انتها ان موسل لما انتها ان موسا مانگره هیچی تو این عبارت نیست وقتی غذب موسا پایان یافت خب غذب بله شروع میشه پایانم پیدا میکنه غذب شروع و پایان داره اما سکوت ندارد ما از کجا فهمیدیم که سکته اینجا مجازه قرینش ال القذب از اون فهمید وله اگه گفته بود لما سکت موسا وقتی موسی ساکت شد می‌گویند خب حقیقت موسی می‌تونه ساکت شه. غضب خب پس چی به چی تشبیه شده؟ انتها گوش کنید انتها که فعله تشبیه شده به سکته که فعل دیگری است. قرینه چیه؟ الغضب که ما دیدیم جامع بین این دوتا چیه؟ بین انتها و غضب جامع بین اینها بگید چیه جامع عبارت است از اینکه به پایان رسیدن تمام شدن خب تمام شدن توی سکوت حسیه آدم میشنبه دیگه خب این شده مشبهون بهان به چون واظحتره پس انتها تشبیه شده به سکته انتها حذف شده انتها انتهی می نویسید به فعلها انتها انتهی انتها تشبیه شده به سکته انتها حذف شده سکته به جاش نشسته به قرینه القصب و چون سکته فعله لفظ مستعاری که تو عبارت از فعله سکته به این میگن استهاره طبعیه و چون مشبه هم اومده جای مشبه نشسته بهش میگن مسرحه یا تسریحیه پس این مسرحه تسریحیه طبعیه است خب حالا بیاید این مرحله تو خارج اتفاق افتاده تو آیه اما کی میشه ما انتقا فعل رو تشبیه به سکته کنیم زمانی که توی ذهنم من زمانی که پیش خودم انتحاء مستر انتها رو تشبیه کنم به از سکوت بگم پایان یافتن رو به طور مطلق میشه تشبیه کرد به ساکت شدن؟ آره آره میشه مقصا ساکت شدن حسیه میشه. بعد میگه خب من انتها که پایان یافتنه تو ذهنم تشبیه کردم به از سکوت ساکت شدن سکوت و گذشتم جای انتها. اگر این در خارج بود با توجه به اینکه سکوت اسم است اسم جامد است مستر است، به این میگفتن چی؟ میگفتن استعاره مسرحه اصلیه به این میگفتن استاره مسرحه بگید اصلیه پس من یه استاره مصرحه اصلیه از مسترهای اینها تو ذهنم ساختم دیدم اون شد خب وقتی که اون شد من آمدم از الانتهاق انتخها رو مشخفت مشتق کردن از... از سکوت هم سکته رو مشتق کردن به هم حالا اگر از الانتها منتهی رو در بیارم اسم فیاد از سکوت هم ساکت رو در بیارم باز اینا میشه می شون개�ومدش میکن از الانتها ینتهی رو در بیارم فر مزاره از سکوت هم یسکوتو رو در بیارم باز هم می شون موش کنید این یک امر عقلیه که اسم فائل ها رو میشه به هم تشبیه کرد فعلای مزاره رو میشه به هم تشبیه کرد های مازی رو میشه به هم تشبیه کرد اسم مفعول و اسم مفعول میشه تشبیه کرد اما به یک شرط به یک شرط, شرط اینکه که مسترهای اونها رو بشه به هم تشبیه کرد و از لحاظ اسم مفعول با اسم مفعول فعل مازی با فعل مازی فعل مزاره با فعل مزاره که مثل همن یعنی از نظر ظاهری سوری یعنی از نظر شکلی که اسم فایل با اصم فایل فعل مازی با فعل مازی ساختار لفظیشون که یکی اون شکلشون چیه که باعث میشه این دوتا بتونن به هم تشویی بشن اون معنای مستریشونه مثلا اگر یه نفر بگه که فرض کنید که اکلا تشبیه شده به کتبه میگه آقا نمیشه خود خب چی نمیشه اکلا از نظر شکلی که فاول فلین و لام فل فل مازی کتبه هم که مثل هم میگه نه آقا کی خوردن رو شبیه کرده به نوشتن کجا خوردن شبیه به نوشتنه خوب ببینه خوردن نوشتن مستر یعنی زود میریم توی مسترشون مستراشونو که بههم تشبیه میکنیم این نمیشه پس عکله رو نمیشه تشبیه کرد به کتبه چرا چون خوردن رو نمیشه تشبیه کرد به نوشتن. ولی انتها رو میشه تشبیه کرد به سکته پایان یافتن و به سکوت و ساکت شدن میشه تشبیه کرد چرا چون انتها رو میشه تشبیه کرد به سکوت و الا فعل رو اگر بندازیم تو لوله آزمایش فعل رو یه دونه شکل سوریش در میاد درست شد یه معنای مستریش خب شکل سوریه اینا و پوستش که مثل همه اون محتواش که مسترش هست باید به هم تشبیه بشه درست شد پس در اینجا انتها تشبیه شده به سکتر انتها هز شده و سکته به جاش نشسته این مرحله در خارجه در عبارت در آیه قرآنه. قبلش باید چی به چی تشبیه شده باشه؟ انتها به سکوت انتها هز شده باشه سکوت جاش نشسته باشه و چون سکوت اسم جامد و مستره اون مرحله اصلی بوده که قبل از این بوده در نزد متکلمه درست شد؟ این مرحله رو از روش ساخته در خارج ما داریم میبینیم شما استاره طبعیه رو دیدید الان این فعل بود درست شد؟ این فعل بود لما سکت عن موسا الغذب حالا اگه به جای سکت ساکت بود یعنی اینطوری مثلا گفتیم گفتیم که غضب و موسا ساکتون ها ما یعنی ساکت بگید استعار است این به معنای چیه به معنای منتهن منتهن کی میشه ساکت به جای منتهن بیاد موقعی که من تو ذهنم انتقار رو تشبیه به سکوت کنم اگر اون دوتا شد اسم فایلاشونم میشه درست شو و لما سکتاند موسا ال قزوا، اخزل الواه و فی نسقط ها بودن و رحمتتون للحظینهمله خب مثال پنجم رو ببین. و قال متنبی فی وصف صد متنبی در توصیف شیر گفته، در توصیف شیری اینطور گفته. یه شیر رو دیده بوده؟ داشته اون رو توصیف میکرده گفته وردون ورد یعنی شیر سرخ م? وردون یعنی هو وردون خبر مبتده محصوفه اذا ورد البحیرته ورده یعنی رسید به آب که آب بخوره وارد شدن به آب برای نوشیدن اینو میگن ورده وقتی که آب رو نوشید و برگشت میگن صدره پس ورده یعنی حیوان وارد آبش خور شد آب بخوره. صدره انها یعنی از اونجا برگشت درست شو؟ ورد الماء یعنی به آب رسید که آب بخوره صدر عنهو یعنی از اونجا برگشت میگه وردون اون شیره سرخی است اذا ورد البحیرت بحیره دریاچه تبریگی است در سوریه در شد. البحیره الفلام داره یعنی اون دریاچه منظور اون دریاچه تبریه است که در سوریه بوده میگه وردون ازا ورد البحیر تشاربند شیر سرخی که هنگامی که وارد میشه به دریاچه برا آب خوردن اینجا چیزی مجاز نیست هست شیر سرخ یا شیر سرخ بوده ورده هم که شیر سرخ میتونه بیاد وارد آب بشه به دریاچه برسه و از اونجا آب بخوره اونجا هیچ نیست یعنی شیر سرخی رو داره توصیف میکنه و وردون وردل البو این صفت این ازا ورد البو صفت وردون این جمله شرطی شیر سرخیست که این که رو میگن که صفت ساز یعنی این جمله بعد صفت شیر سرخی که هنگامی که وارد میشود به دریاچه تبریه به این دریاچه وارد میشود در حال نوشیدن آب شاربن حال در حال نوشیدن آب این و همه ی حیوانات اینو تو ذهن داشته دورش همه ی حیوانات حالا این راز بقام نگاه کنید توجه کنید همه ی حیوانات اهلی و غیر اهلی اینها موقعی که چریدند و تشنه شدهاند، میان آب پیدا میکنن. یعنی از اون گنجش گرفته تا فیل. موقعی که مسیدی رو تیم میکنن و چشمشون میفته به چشم آبی که چشمه آبه و میخوان از اون چشم آب بنوشن. همهشون صدا میکنن. وقتی چشمشون به آب میفته همه شروع به صدا میکنن. انگار که موفقیت خودشون اعلام میکنن. همشون همینطور. شیر هم وقتی که است و میاد و این دریاچه رو میبینه و میخواد آب بخوره میگه از دور که میاد یک قرشی میکنه خمی طبیعیه بعد میگه شیر ما وارد دریاچه تبریه میشه برای نوشیدن آب ورد الفراته فرات کجاست؟ تو عراق نیل کجاست؟ رود نیل تو مصر میگه خود شیر وارد میشه برای نوشیدن آب در حالی که آب می نوشه به دریاچه تبریه در سوریه مرد فرات و نیله اتفا جای فرات وارد میشه به فرات و رود نیل زعیره زعیر مستره یعنی قرلیدنش اونو هو میخوره به حسد. میگه خودش به دریاچه تبریه وارد میشه تو سوریه قرشش وارد دریاچه وارد رود نیل میشه و رود فرات یعنی انقدر صدای غرشش بلنده که قرش اون به رود فرات میرسه و رود نیل خوب فکر میکنم شعر رو فهمیدید میگه خودش میاد در سوریه به این دریاچه تبریه که داره نزدیک میشه آب خور آب خوران شاربن قرشی میکنه این قلهش به رود فرات در عراق میرسه و رود نیل در مصر ببینید ورده برای اون شیر به کار لفته توی مصر اول درسته شیر وارد دریاچه میشه خب وردال فراته وارد به فرات میشه و رود نیل قررش کردنش قررش کردن که ورود نداره بیاد آب بخوره آه؟ قررش کردن ورود نداره ما میگیم صدای او برای آب خوردن اینطور که این میگه صدای او برای آب خوردن قررش کردن او برای آب خوردن وارد رود فرات و نیل می کردن قررش کردن که آب نمی خورد درست شده نه؟ اینجا به قرینه زعیر یعنی قررش کردن خب ما می فهمیم ورده مجازه وارد آب شدن اینجا مجازه چون برای غرش کردن به کار نمیره بلکه اینجا باید چی میگفت میگفت وصله وصله یعنی چی؟ رسید بله صدا میرسه الان صدای من به شما میرسه برای غرش کردن رسیدن به کار میره نه وارد شدن یعنی ورود به آب م? وسله میرسه خب ما ما الان اینجا اگر ایشون وسله گفته بود یه چی تو عبارت نبود گفتش که وردون ازا ورد البحیر تشاربن وسل الفرات زئیره و نیلا ما هیچ چی نمیدید حالا که ورده گفتیم آه ورده برای ورد تو مثال اول درسته ولی ورده برای ذعیر قریدن تو مثال دوم نمیتونه باشه بلکه باید یه تشویح صورت گرفته. باشه نگه چی به چی میگه وسله تشویح شده به ورده وسله تشویح شده به ورده خوب بعد وسله حذف شده ورده به جاش نشسته. فعل مازی اومده جای فعل مازی دیگه درینه چیه ظهیر درینه چیه ظهیر قریدن که وصول دارد ورود ندارد درست شد کی میشه این مرحله در خارج تو عبارته چون ورده هم فعله پس تبی است کی میشه وصل به معنای ورده شده باشه موقعی که من در پیش خودم در ذهن خودم متنبی پیش خودش تو ذهن خودش وصول را وصول یعنی رسیدن تشبیه کرده باشه به ورود یعنی رسیدن به آب که حسیه و یه شدت داره که شده مشبه اون به وصول به چیزی را تشبیه کرده به ورود به آب بعد وصول را حذف کرد هر دوش ش وجه هم دارند اون جامعه جامعه رسیدن به مطلوبه ولی رسیدن به مطلوب تو ورود کاملا حسیه چون آبه مطلوب کشنگی داره این شده هم بده وصول را حذف کردیم ورود را به جاش گذاشتیم این مرحله چون توی مصدره توی اسم جامده اصلی از این تو ذهنه پیش متکلمه بعد که دیده ورود رو میشه بهش وصول رو تشمیه کرد اومده از وصول وسله رو در ورده از ورود هم ورده رو در ورده مشخص شد ورده رو گذاشته جای وسله حالا همین کارو میتونست در مورد مثلا واصل و وارد بکنه در مورد مثلا یسلو و یردو بکنه فرقی نمیکرد اسم فایلاشونم میشه به هم تشبیه کرد فیل مزارهشونم میشه به هم تشبیه کرد چرا؟ چون مسترهاشونو میشه به هم بگید تشبیه کرد وردون ازا ورد البحیر تشاربه ورد الفرات زئیره و نیلا پایین نگاه کنید الورد اونی که یزربو یعنی یمیلو تمایل دارد رنگش به سرخی که معمولا شیرها رنگ هنایی سرخ دارن اونطور ول مرادو بل بحیرته بحیرت و تبریته دریاچه تبریه است که گفتم در سوریه ای معناه اینه ان زئیر العسد همانا قرش شیر شدیدن قرش این شیری که من دیدم خیلی شدیده فاذا زعر فی تبریت پس هنگامی که قرش میکنه در سوریه در کنار دریاچه تبریه سمع زئیره من فی العراق و مصر وقتی که قررش میکنه در کنار دریاچهٔ طبری یه موقع که میخواد آب میبینه بخوره سمع میشنود قریدن او را زئیرهو من فی و مصر کسانی که در عراق هستند کنار رود فرات و کسانی که در مصر هستند کنار رود نیل. این دو تا مثال که شما دیدید حالا بیاید توی متن باز ما یه مقداری حرف داریم اینجا که انشالله براتون خواهیم میگه که شما وقتی اون سه مثال اول رو که توش های مصرحه و مکنیه فراوان بود و من براتون توضیح دادم نگاه بکنید تو متن میگه خب و و رجعت الى کل اجرای اجریناه للاستعارات السابقه اگر برگردی به تمام استعاره هایی که ما پیاده کردیم تو استعاره های ستا مثال یک و دو و رعیت انناف تسریحیت میبینی ما در استعاره های تسریحی و مسرحه استعرنا لفظ دال علی المشبه بهیل للمشبه میبینی ما در اونها استعاره کردیم لفظی رو که دلالت بر مشبه هم به میکنه بر مشبه یعنی لبس مشبه همون به و دادیم به مشبه و اننا لم نعمل عملا آخر و کار دیگه ای نکردیم همش همینه اونی که تو ذهنمونه و همونیه که تو خارجه یعنی دو ای نیست و توی تسریحیش کار کردیم توی تسریحیش ما حذف کردیم مشبه هم به و. درست شو. قبل از رمزنا بنویسید که وفت و حذف و حذف المشبه به و حذف نا المشبه به و رمز نا علیه به شیء ملوازمی و توی اون اسارای مکنیهش هم مشبهون به حذف کردیم و اشاره کردیم به اون مشبهون به محذوف به یکی از لوازمش مکنی هم همینه دیگه مشبه هم با حضب میکنیم. یکی از لوازم رو میاریم برای مشبه ثابت میکنیم میشه ساره مکنیه که همین اثبات لازم هم میشه غرینش توضیح دادیم هم. پس ما در تصریحیه فقط مشبه هم با کشیم جای مشبه و در مکنیه مشبه هم با کردیم یکی از لوازم خواستشو آوردیم برای مشبه ثابت کردیم و اندل استعارتا تموت عیزند به هازلمت بعد استعاره با همین عملی که ما کردیم همین یه مرحله تمام شده و هزا تموت الفاظ الاستعارات سابقه و اگه الفاظ استعاره ها رو توی سه تا مثال اول یک و دو سه نگاه کنی رعیتها جامده تن میبینی همش جامده غیر مشتقتن اصلا مشتق نیستن فعل نیستن حرف نیستن یه مرحلا اسم جامد. و یص ماهها زن نوع ملل استارت به استارتل اصلیت. این نوع از استعاره که ستاره در اسم جامده بهش میگن استستاره بگیر اصلگه. خ خب تمام این مه قبلمون بود که دیدیم. آنزار ازن علل مثال این ال اخیرره. حالا نگاه کن به این دو تا مثال چه و پ. تجد به کل منهما هما تسریحیتن میبینی در هر یک از اینها یه تصریحی است و فی اجرائه ها نقل و در پیاده کردنش ما اینطور میگیم که ما پیاده کردیم میگه شب به این مرحله تو ذهنه. شب به انتها القذب به سکوت یعنی شبه انتها او به سکوت در این مرحله مستر به مستر تشبیه شده انتها به سکوت شبه انتها او القذب یعنی انتها به سکوت میگه واخه اینا چه چیزی داره میگه به جامع جامع بچه بر بود به جامع هدوء هدو یعنی آرامش حالا آرامش تو کدوماشون در تو سکوت چون هسییه هسی انتها فهمیدنی پایان یافتن درست اما سکوت پایان یافتنش هسیه مو میشنویم به جامع الهدوع فی کلم ثم را لفظ دان علی المشبه بهی و هو سکوت بعد سکوت رو که لفظی است دلالت بر مشبه به میکنه استعاره بردیم برای مشبه و هو انتها و الغذب این مرحله تو ذهنه تا اینجا این مرحله اوله تو ذهنه پیش متکلمه این مرحله رو ما نمیبینیم ولی اتفاق افتاده خب بعد ببین سمه یعنی سپس یعنی اومدیم تو خارج ثم اشتق قمن از سکوت به معنا انتها و الغذب سکته به معنا انتها بعد مشتق شده از سکوت که به معنای انتهای غضب بود سکوت که مشبع بود به معنای انتهای غضب که مشبه بود مشتق کردیم سکاتر رو به معنای انتها بعدم سکاتر رو گذاشتیم جای انتها رو گذاشتیم جای انتها این میشه مرحله دوم که در خارجه که معمولا با همین سمنشونش میدن و میگن یعنی اون مرحله رو که انجام دادیم سپس اومدیم در خارج ها رو مشتر کردیم و به هم تشبیه کردیم گویم مرحله راحت بود مرحله دوم بود استعاره مسرحه تبعیه مسرحه از تصریحی است چون مشبه به به جای مشبه نشسته تبعیه است چون در فعل تابع یک استعاره در مستره که تو ذهن بوده. در مشتق یعنی فعل استعاره بابا شد. نگاه کنید مثال دوم که توضیح دادیم شبه به وصول و صوت الاسد وصول تشویر شده رسیدن صدای اون شیر فرات و نیل رسیدن صدای اون شیر به فرات و نیل شبه به وصول و صوت الاسد فرات غلط نوشته نوشته به وصول الما باید بنویسه به, به ورود الما وصول تشبیه شده به ورود غلط نوشته درستش کن شبه به وصول و صوت العزد الالفرات و نیل به ورود الما وصول تشبیه شده به ورود به جامعه بچ شبه چیه به جامعه ان کلا لنتهي به اینکه هر دو میرسن به پایان ولی ورود رسیدن به پایان به شکل حسیه برای همین شده مشبعون به ثم استویرا بعد استارا برده شده اللفظ دال علالمشبه بهی با هو و هو ورود سپس لفظی که دلالت بر مشبه به میکنه که عبارت از مستر ورود روچو للمشبه برای مشبه و اون هم عبارت است از وصول و صد مستر وصول ورود را آوردیم گذاشتیم جای وصول این مرحله تو ذهنه مرحله در مسترها وقتی در مسترها ما تونستیم وصول رو تشبیه به ورود کنیم، ثم از این به بعد اون مرحله دومه. چون تبعیض دیگه مرحله در خارجه. این مرحله تو ذهن. ثم اشتوق قمن الورود به معنا وصول صد ورده به معنا وسله بعد ورده رو گذاشتیم جای وصله. به قرینه چی؟ به قرینه ظهیر قریدن. چون قریدن میرسد غریدن وارد برا آب خوردن نمی شود ورود ندارد اما وصول دارد ثم اشتق قمین ورود به معنی وصول صد ورده به معنی وصول حالا نگاه کنید همون میگه که دو مرحله است یه مرحلش در مستر است و جامت در ذهن پیش متکلم یه مرحله در خارج و ازا انت وازنته پس اگر تو مقایسه کنی بین اجرا هاتین الاستعارتین بین اجرا و پیاده کردن این دو استعاره که چهار و پنج باشه و اجرا الاستعارات او ال و پیاده کردن استعاره های سگانه قبلی رأیت تا انل هنا میبینی که پیاده کردن استعاره اینجا یه مرهدهی نیست لاین تهی اند استعارت المشبه للمشبه به اینجا نیست که ما بگیم این آمده جای اون نشسته تمام یا این مشبه اومده به هست شده لازمش اومده برا اون تمام یه مرهدهی نیست انل اجراءه اونا لاین تهی اند استعارت المشبه به للمشبه کما انتها پلستارت و لولا همونطور که اون ستای اولی یه مرحله بود بلکه اینجا بل یزید و عملا آخر بلکه اینجا یه مرحله دیگری هم دارد و هوه و اون عبارت است از اشتقاق و کلمت المنن مشبهه ما یه کلمه رو که اینجا فعل بود از مشبهان به مشتق کردیم یک کلمه ای را از مشبه مشتق کردیم بعد اونها رو به هم تشبیه کردیم مرحله دوم بود و ان الفاظ الاستعاره اونا مشتقتون اینجا به دلیل اینکه الفاظ استعار به فعله دو مرحله داره لا جامدتون جامد نیست مثل اون مثال های اول و یسم باها من نوع منل استعاره به استعارت طبعیته. این نوع از استاره رو بهش میگن استاره بگید طبیعی چرا لعم نجر یاده مشتق زیرا جریان این استاره در مشتق کان تا به اند جریان زیرا جریانش در مشتق فیل تابع جریانش در مستر و اسم جامدی است که تو مرحله اوله و پیش متکلمه و تو ذهنشه دو مرحله داره دو مرحله ایست خب اینجا ما میخوایم یه مطلبی رو به شما بگیم که به عنوان تفسره است به عنوان تفسره بس تمام شد بس تمام شد حالا میخوایم وارد تبصره بشیم بنویسید هر استعاره هر استعاره مسرحه طبیعی ای هر استعاره مسرحه طبیعی ای جایز است در قرینه آن جایز است در قرینه آن هر استعاره مسرحه طبعیه ای جایز است در قرینه آن استعاره مکنیه اصلیه اجرا کنیم درست کنیم ولی ولی نمیتوان هر دو استعاره را یعنی مسرحه طبعیه و مکنیه اصلیه اراده کرد بلکه بلکه نگاه میکنیم کنیم هر کدام از این دو استعاره زیباتر بود آن را اجراع کرده و بیان میکنیم و بیان میکنیم خب حالا دیگاه کنید نیگاه کنید چی گفتیم گفتیم در هر استعاره مصرحه طبعیهای مثل همین دوتایی که الان چهار و پنج خوندیم هر استعاره مرحه بعه جایز ما تو قرینش فیالا قرینه مثال چار قذبه قرینه مثال پنجم زهیره جایز است در قرینش استاره مکنیه اصلیه درست کنیم خب جایز ما هم الان درست خواهیم خب میشه دوتا استاره یکی در فعله هست سکته و ورده که مصرحه طبعی است یکی هم تو قرینه شونه که غذب و زهیر باشه مکنیه اصلی است آیا تو این عبارت دو تا استاره است؟ نه نه نمیشه که خلاصه چون غضب یا خودش لفظ مستاره یا قرینه است نمیشه که دوتا باشه پس بنابراین دو تا از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد دو استاره میشه توش جاری کرد اما ما نگاه میکنیم ببینیم کدومشون قشنگتره تشبیهش زیباتره هر کدام زیباتر و قشنگتر بود اون رو میپذیریم و بیان میکنیم پس در هر استاره مسرحه طبعیی جایز در قرینه اون استعاره مکنیه اصلیه درست کنیم ولی نمیتوان هر دو استعاره را اراده کرد بلکه نگاه میکنیم هر کدام زیباتر است آن را اجرا کرده و ذکر میکنیم و بیان میکنیم. نگاه کنید توی قاعده اول قاعده کتاب رو درست بکنیم که بتونید بخونیدش کتاب نوشته کلو طبعیتن قرینه توها مکلیتون این خیلی توش حصف و اینها داره که از ان فهمیده نمیشه بلکه اینطوریه کلو استعارتن مسرهتن طبعیتن یعنی حس داره. پس چی شد این کل تبعیت؟ کل استعارت مسرهت تبعیت تبعیت طب... کل استعارت مسرهت تبعیت قرینتوها در قرینتوها دریش در استعارتون مکنیتون اصلیتون درست شو؟ پس این دول میشه کل استعارتن مسرحتن طبعیتن قرینتوها استعارتون مکنیتون اصلیتون درست شد هر استاره مسلحه طبیعی در اش استاره مکنیه اصلی است خب اون چیزی که ما گفتیم و ازا اجریت ال استارت و فی واحدت منهما و اگر اجرا شد استاره در یکی از اینها یعنی درونی که قشنگ تره و ازا اجریت اجریت یعنی پیاده شود به هنگامی که پیاده شود استعاره در یکی از اینها امتنع اجراوها فلوخا دیگه نمیشه در دیگری اجرا کرد یعنی یه دونه استعاره هست تو عبارت دوتا نیست از دو دیدگاه دوتا میشه درست کرد یه دونه شما بیان میکنیم دیگه نمیشه اگر یکیش رو پذیرفتیم امتنع ممتنع میشه پیاده کردنش در دیگری حالا اونی که میپذیریم اونی که میپذیریم بر چه اساسی میپذیریم؟ بر اساس اینکه زیباتر است بر اساس اینکه زیباتر هر یکیش رو دیدیم زیباتر پذیرفتیم دیگه اون یکی رو هستش میکنیم خب الان بیاید توی مثال های و پنج کتاب مخوایم همین مبهست رو داشت. قرینه کدوم بود قذب و زعیر توی اولی مثال چار میگیم غضب تشبیه شده به انسان چون وقتی میگه قذبش ساکت شد ما میفهمیم ساکت شدن کار قذب نیست کار انسانه پس غضب تشبیه شده به انسان انسان حذف شده یکی از لوازم خاصه انسان که سکوت باشه سکته باشه برا غضب ثابت شده پس غضب تشبیه شده به انسان انسان که مشبهن به حز شده یکی از لوازم خاصه انسان که سکته باشه برا غضب ثابت شده این میشه مکنیه و چون غضب اسم جامده میشه اصلیه قذب و تشبیه این اون قذب که تو عبارت هست لفظ مستعار اسم جامده چون اون لفظ مستعار اسم جامده میشه اصلیه مکنیه اصلیه غضب تشبیه به انسان شده انسان هست شده یکی از لوازم خواسته انسان که سکته هست برای غضب ثابت شده اثبات این لازم هم میشه قرینه استاره استاره مکنیه است غضب چون اسم جامده به این میگن اصلیه بعد شد مکنیه است حالا ما نگاه میکنیم میگیم که ببین اگر انتها که یعنی پایان یا تشبیه بشه به سکته یعنی ساکت شد این قشنگ تره از نظر تشبیهی که توی طبعیه هست یا اینکه غضب رو بیاریم به انسان تشبیه کنیم میگه خب انتها سکت زیباتره که این فعل ها به هم تشبیه بشه چون غضب خشم تشبیه بشه به انسان خشم کردن که مصدره تشبیه بشه به انسان این خیلی جایگاه تشبیهی بگید ندار پس مکنی اصلیش رو ذک نمیکنیم توی دومی که وسله تشبیه شده بود به ورده قرینش هم ضئیر بود برشو. ما شو ما میایم میگیم زئیر که قریدنه از زئیر که قریدنه تشبیه شده به حیوان الحیوان حیوان مثل شیر مثل پلنگ قریدن تشبیه شده به ال حیوان حیوان شده که مشبهان بهه یکی از لوازم خاصه حیوان یکی از لوازم خاصه حیوان چیه اینکه وارد آب شاب شا بخوره چون نیاز داره دیگه آب خوردن ورده یکی از لوازم حیوان که ورده است برای قرنیدن ثابت شده گفتیم ورد الفراته زعیره درست شد این اثبات لازم هم قرینه اصاره میشه مکنیه حالا چون زعیر اسم جامده میشه اصلیه پچی به چی تشبیه شد از زعیر از زعیر که مستن است تشبیه شده به حیوان حیوان که مشبه همده هزف شده یکی از لوازمش که ورد است یکی از لوازمش که ورد است برای زعیر اصفات شده این اثبات لازم این اثبات لازم میشه قرینه استاره استاره میشه مکنیه و چون زعیر اسم جامده میشه اصلیه ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که وسلت تشبیه بشه به ورده خوبه رسیدن تشبیه بشه به وارد شدن به آب خب وارد شدن به آب چون سی او اینا بشه ما به خوبه رسیدن تشبیه به اون قشنگه اما قریدن که یه مستره تشبیه بشه به حیوان این خیلی قشنگ نیست لذا همون استاره تبعیش رو میفذیدیم و سراغ مکنیه اصلیش نمیریم اینو در این هم پیاده کرد درست شد؟ حالا بیاید توی متن خودشون همین رو پیاده میکنه میگه بنا بناسانیت برگرد با ما برا مرتبه دوم مثال المثالین الاخیرین به این دوتا مثال آخری ل نتعلم منهما شیئا جدیدا تا یه چیز جدیدی یاد بگیریم که البته ما توضیح دادیم و شما هم یاد گرفتی میگه فصل اوله در مثال اولی یعنی چهار و قوه و اون هم عبارت ولم لم با سکعلم موسا جایزه. ان یا شب به غزب به انسان، اینکه بگیم ما غضب تشبیه شده به انسان. ثم یا زفع به بهیم، بعد مشببه به که انسانه حذف شده. و یا الیه بشه یه من لواظه الخاصه، بعد اشاره شده به یکی از لوازم خاستش، با هوه سکته با اون سکته است اون موقع میشه چی؟ فتکون و تون استعارتون مکنیگتون اصلیگتون اون موقع در غضب ما استعاری مکنیه اصلیگه داریم این مال اولی و فستانی و در دومی و هوه که عبارت است از ورد الفرات زعیرهو یجوز و ان یشبه هست جایز است که تشبیه بشه زعیر که قرینه استعاره بود قردیدن به حیوان، به یه حیوان ثم یخزف و بعد این حیوان که مشبه به هست میشه سمه یخزف هم هم و یرمز و, و الیه بشه من لوازم الخاصه بعد اشاره بشه به چیزی از لوازم خواستش و هو ورود و اون هم عبارت است از ورده و هوا خب ورده اشاره بشه به چیزی از لوازمش و اون هم ورده است که ورد فرات و فی ذی روح استعاره تن مکنیه اصلیه اون موقع در ذی روح ما استاره مکنیه بگید اصلیه استاره بگید اصلیه ده. میگه این قاعده است و هاکزا کل استعارتن مسرحتن تبعیتن و همچنین است کلو استعارتن مسرحتن تبعیتن یسه ها انیکونه فی قرینتها استعارتون مکنیتون اصلیتون صحیح است که باشد در قرینه آن استعاره مکنیه اصلیه ولی این گیره یعنی جز این ولی غیر انهو لایه یجوز جز اینکه جایز نیست لکه برای تو اجرا اول استعالته جایز نیست و استعاله رو جاری کنی الا فی واحدت من هما مگر در یکیشون لا فی کلتای همامند نه در هر دوتا حالا در کدومش جاری میکنیم؟ من گفتم در اونی که قشنگ تره هر کدومش از نظر تشبیهی زیباتره استاره رو میگیم تو اونه چون استاره پایه و اساسش بر زیباییه پس هر کدوم قشنگتره اون مقبول متکلمه درست شد هر کدوم قشنگتره اون مقبول متکلمه خب با استاره طبعیه رو در مصرحه هم خوندیم ولی گفتیم که استاره طبعیه عام مطلقه در مکنیه هم هست که گفتیم در حد پنج درصده که گفتیم تو حاشیه گفته. که الان اون رو میخونیم نگاه کنید یه مثال براش زده. مثالش که اگه یاد گرفتیم درست شد همین پیاده میشه. خیلی نادره. یعنی واقعا من خودم توی مطالعاتی که داشتم توی سالهایی که بوده و اینها پیاده کردن اینجا دیدم. ولی واقعا استاره مکنیه طبیعی در مثالها شعرها، آیات اینها ندیدم. در حد بسیار نادره همون پنج درصد هم شاید زیادش باشه که ایشون به خاطر همین در پاشیه کتاب این رو ذکر کرده میگه تقسیم و لستارت الان اصلیت و تبعیت استاره تقسیم بشه به اصلیه و طبعیه آمون عام است عمومیت دارد فن استارت در استعاره سبا اون اکانت تصریحیتن ام مکنیتن حالا میخواد تصریحیه باشه مکنیه باشه عامه پس بنابراین این چهار مرحله میشد مصرحه اصلیه مکنیه اصلیه مصرحه تبعیه مکنیه تبعیه اون سه مرحله اول خوندیم این مکنیه شو مثال نزده الان اینجا توی این راشیه مثال میزنه و مثال استعارت المکنیت اتبعیت مثال استعاره مکنیه تبعیه اینه حالا ما پیادش بکنیم شما پیاده کردنشو قلم در دستت باشه یاد داشت کن پیاده کردنشو وقتی پیاده کردی میبینی که مرحله سختی نیست دو مرحله است یه مرحله تو خارجه تو این عبارت یه مرحله قبلش توی اسم جامده تو ذهن درست شو منی مکنیه است مکنیه یعنی چی؟ یعنی مشبه هم به هست شده یکی از لوازمش آورده شده و برای مشبه اثبات شده اعجبنی اعجبنی اراغت و زاربه دمل باقی اعجبنی اراغت و زاربه دمل باقی اعجبنی یعنی شیفته کرد منو خوشم اومد خب اعجبنی یعنی شیفته کرد منو یعنی خوشم اومد همین لغت رو یاد کرد. عراق مثل ادامه مستر عراق یوری عراق یوریق و این به معنای ریختن خونه ما میگیم خونشو ریخت یعنی چی؟ یعنی کشتش عراق دمهو خونشو ریخت یعنی کشت پس اراقه یعنی ریختن خون عراقه یا اراقت دم یعنی خون باقی یعنی متجاوز ظالم شورشی متجاوز رو متجاوز رو چونی هم باقی درست اینو تو ذهن دارید شما که خودتون که معمولا اگر یک کسی یک کسی رو شدید بزنه یک کسی یک کسی رو شدید بزنه مردم مبالغه میکنن میگن کشت میگن اوه اوه نگاه کن پسرشو کشت داریم میبینه خب نکشتدش بلی کتک شدید زده ضرب شدید رو این هست که مردم تشمیل میکنن به قتل کشتن درستی دارم میگه بابا کشتیش یعنی خیلی شدید زدیش چون نمرده که درست شو؟ این هم وجود داره اینجا این عبارت میگه اعجبنی اراغت و زارب زاربه نکشته میشه چی؟ شیفته کرده من رو اراغت و زارب ریختن این زارب زننده خون زالب رو نگفته اراغت القاتل اگه گفته اراغت القاتل دیگه اون مرده بود زارب درست شده نه میشه ریختن خون این زارب خون اون مقتول را رو... کشتن این زارب اون مقتول رو منو شیفته کرده در که نگشتتش کتک شدید بشته چون زاربه قاتل نیست پس این آقا خیلی شدید زده اون متجاوز رو این ازش تعبیر کرده به خون ریختن بعد میگه این منو کهیف داد وقتی اون متجاوز رو به قصد, کش زدن به قصد کشتن زدن اون متجاوز رو من کیف کرد خب اینجا چی تشبیه به چی شده؟ گوش گوش یاد داشت زارب از زارب که اسم تشبیه شده به القاتل آیا از ظارب تشبیه شده به القاتل بعد کدوم حذف شده قاتل حذف شده چون ظارب تو عبارت هست حالا قاتل حذف شده چی از لوازم قاتل آوردیم اراقت و دم الگا... باقی اراغت و دم الدم دم یعنی ریختن خون که از لوازم و خصوصیات قاتله این آوردیم برای زارب ثابت کردیم گفتیم اراغت و زاربه دمل باقی ریختن خون باقی توسط زارب زارب که ریختن خون نداره پس زارب تشبیه شده گوش کنید زارب تشبیه شده به قاتل قاتل حذف شده یکی از لوازم خاصه قاتل که اراقت و دم باشه آوردیم برای زارب اثبات کردیم همین اثبات میشه قرینه استاره استاره میشه مکنیه چون مشبه هست مشبه قاتل به قاتل هست چه مکنی؟ و چون زارب مشتقه چون زارب مشتقه اسم فائده میشه تبعیه خب این مرحله الان در خارجه. که ما میتونیم زارب رو تشبیه به قاتل کنیم موقعی که قبلش توی ذهنمون قبلش توی ذهنمون ضرب رو تشبیه به قتل کنیم قبلش پیش خودمون ضرب رو تشبیه به قتل کنیم بعد قتل رو حذف کنیم یکی از لوازم خواستهش که اراقت و دمه برا ضرب ثابت کنیم بشه مکنیه چون ضرب هم اسم جامده بشه اصلیه قبلش باید این تو ذهن صورت بگیره ما اگر در ذهنمون تونستیم ضرب رو تشبیه به قتل کنیم در خارج میتونیم از ضرب اسم فاعل بسازیم زارب از قتل هم اسم فاعل بسازیم قاتل بعد زارب رو به قاتل تشبیه کنیم بعد قاتل رو حذف کنیم یکی از لوازم خواستش که ارا و دمه برا ضارب اثبات کنیم بشه استاره مکنیه طبیعی استاره مکنیه طبیعی شد پس بنابر این توجه کنید توجه کنید اعجبنی اراغت و زاربه دمل باقی چی به چی تشبیه شد زارب به قاتل قاتل هست یکی از لوازم خواستش اراغت و دم برا زارب اصفاد شد این میشه ساره مکنیه چون مشبهان به هست شد یکی از لوازم خواستش اومده که غری هم هست میشه اصطاره مکنیه چون زارب مشتقه میشه تبعیه تمام شد چرا به این گفتن تبعیه چون زارب رو من موقعی میتونم تشبیه به قاتل کنم که در ذهن خودم ضرب رو تشبیه به قتل کرده باشم بعد قتل که مشبوه به حذف کرده باشم اراغت و دم که از لوازمیشه میشه برای ضرب ثابت کرده باشه. این مرحله که در مسترشون جاری میشه و در اسم جامعت مرحله اصلیه است این در مستر وقتی پیاده شد در مشتقاتش هم که مثل اسم فائل باشه پیاده میشه درست شد اینم میشه در حد همون پنج درصد خودش استعاره مکنیه طبعیه توجه کنید توجه کنید مثالهایی که ما برای طبعیه خوندیم که سکته بود و ورده توی چهار و پنج فعل بودن این مثالی که اینجا خوندیم اسم فائل بود مشتق بود درست شد ما بهتون گفتیم گفتیم استاره در فعل باشه یا در مشتق باشه میشه استاره طبعیه این از این لحاظش با اون دوتا مثال قبلی فهم کنه این اجرای استاره طبعیه در مشتق اونها در فعل بودند درست شد بازم ما مثال خواهیم زد مثال داریم بازم برا مشتقم مثال میزنیم برا فعلم مثال در فعل بیشتر از مشتقه در فعل و مشتق بیشتر از حرفه که حرف نگفته که انشالله در جلسه بعد حرف رو هم من میگم که اصداره طبعیه به شرط اینکه شما برید خوب مطالعه بکنید تمام بشه شما در حد نهایت بلد شده باشید که انگار هیچی از کتابهای بلاغی کم نبوده همه رو براتون بیان شده درست شد؟ پس؟ استعاره مکنیه تبعیه در مشتق رو هم دیدیم نگاه کنید حالا بیاید تو متن همینی که من پیاده کردم دو مرحله ذکر کردم ایشون بیان کرده میگه که و مثال استعاره مکنیت مکنیه اعجبنی اراغت و زاربه فقط شبه این اون مرحله داخل ذهنه فقط شبه از ضرب و شدید بالقتل تو ذهن اول اومده ضرب شدید رو تشویب قطع کرد خب وچه شبه چیه؟ به جامل ایزا فی کلن با این وچه شبه که در هر دوتا آزار هست خب آزار در کدومش بیشتره؟ در کشتن دیگه حد نهایتش به جامل ایزا فی کلن و را علا قتلون سرب شدید درست شد بعد استعاره آورده شده قتل برای ضرب شدید یعنی قتل هست شده یکی از لوازم خواستش که اراغت و دمه برای ضرب شدید اومده این مرحله تو ذهنه. بعد نگاه کن وشتقه. که قبلا هم گوه سمه وشتقه. این مرحله در خارجه وشتق منهو بعد مشتق شده از این قتل قاتل به معنا زارب ضرب شدید شدیده به معنای زارب ظارب ضربند شدیدا به معنای کسی که میزنه زدن شده قاتل تشبیه شده به کسی که تا به معنای این یعنی ظارب تشبیه شده به قاتل به معنای این شده یعنی در واقع ظارب رو به او تشبیه کردیم و شتو هو قاتل اما قاتل به معنای ظارب ضربند شدیدا یعنی ظارب که ضربند شدیدن هستش ضربه شدید داره داره تشبیه شده به قاتل که قویتره. ثم و بعد قاتل حذف شده و رو الیه به شیء من بعد اشاره شده به چیزی از لوازمش و همه یعنی اراغت الدم و الان طریق استعارت المکنیت تبعیه بر طریق استعاره مکنیه تبعیه ببینید بحث استعاره اصلیه و استعاره تبعیه رو من به طور کامل برا شما گفتم و شما هم شنیدید همین مثال هایی که خودمون گفتیم سه تا مثاله دو تا مثال مثال های لماسک دنموس و الغذب خوب بیاده میکنی یاد میگیریم مسرحه طبعیه و همچنین ورد الفراته زهی رو مسرحه طبعیه. که گفتیم تو قرینه شون میشه استاره مکنیه اصلیه درست کرد ولی هر زیباتره زیبا بحث امروزمون یه دونم گفتیم مکنیه یه که مثالشو در کتاب دیدید عجبنی اراغت و زاربه دمل باقی که من دو سه مرتبه پیاده کردم کل درس ما همین شد همین سه تا مثال و مواردی که بیان کرد بعد یه نموزج داره که سه تا مثال داره توش خودش همین ها که خوندیم کلش تکرار میشه که من اینو میگذارم برای جلسه آینده این نموزج رو به انضمام استعاره طبعیه در حرف که دیگه کامل بشه کتابتون پس شما با توجه به اینکه نیاز دارید که انشالله دوشنبه به شرط زنده بودنمون و بیایم من در خدمتتون بخونم این درس رو یه نگاهی ستا مثال و مطالبشو میکنید حسابی خلاصه نویسی میکنید میفهمید جلسه آتی نموزج رو میخونم تکرار میشه بعد انتهاش اون بحث استاره مسرحه در حرف رو هم میگم که دیگه کلن تمام میشه و مورد تقسیم استعاره به شکل سومین مرحلهش میشیم یه مرحله تقسیم کردیم به مسرحه و مکنیه یه مرحله تقسیم کردیم به اصلیه و که یه ذرش مونده تمام میشه بعد تقسیم سوم استاره رو شروع میکنیم پس بنابراین انشاءالله دقت کامل خودتون رو میکنید و در جلسه آتی من در خدمت شما هستم و بحثمون رو خواهیم خوند این مباحث مباحث فهمیدنیه یعنی شما وقتی که تکرارش بکنی مثالت رو بنویسی یادداشت کنی تکرار کنی بعد از اینکه تکرار کردی یاد میگیرید بعد از اینکه یاد گرفتی دیگه بلدی اون رو حالا توی یه مثال پیاده میشه دوتا مثال پیاده میشه سه تا مثال پیاده میشه می بعد از این هر کجا ببینی دقتت رو نسبت به اون داری و اصل داستان هم سر فهم میشه سر فهم اوست و این زیبایی سخنه شما اگر این رو در عربی یاد گرفتید در قرآن مواردش رو ببینید لذت میبرید و حتی در نوشته های فارسی و در شاهکارهای ادبی فارسی خودمون وقتی اینها رو میبینید کیف میکنید میبینید چقدر زیبایی های سخن رو میتونید بفهمید و درکش بکنید و ازش لذت ببرید بعد بعد از مدتی خودتون هم اینها در الفاظتون در عباراتتون پیدا میشه قادر به سخن زیبا گفتن میشید و میتونید یک ادبیات والایی رو در کلام خودتون داشته باشید ان شاء الله خب توصیهم به شما اینه که مطالعهش کنید ان تا روز دوشنبه همتون به خدای سبحان میسپرم ان الله که در پناه خدا محفوظ باشید و التماس دعا موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته